رسول الله علیه و رسول الله و اله الطیب من اطهر و الله عز وجل و دائمن على دائمن اجمعين مستدعين شد که مرحوم استاد محسن بحث یحیی الازهری رو بررسی بکنی یه مقداری گفتیم بعدش کتابی بررسی بشه اینجا ارز شد که یکی از مذایعی که مرموم استاد داره نصدو این مذیتی حتی علاقه ایر از تنگیه حتی تو کتاب آونسا به هم مرموم شستایی ندارد منصفا خیلی راحت به شنگی رفتن. این راه حتی ای کتاب که هست مستدرکا تعدد ایشون و ششون اون هم این راه ایفرون رو نرست بسیار راه درستی رو خیلی کردن این معلوماتی رو که رو در رای در ک نه دیگه چن هست که نوبت نصب خاطر کردن یاد نیست این رو حتی میشه به اصطلاح امروز به همین کامپیوتر دیگه خیلی اصطلاح خودش این کار رو میکند یعنی این قد این و ضعیف این کار کنه خوبیه بسیار کار خوبی سیم. و اون کاری که ایشون اسما رو سر به همون مصدر دقیقن عبورن و رو مثلا ممکنه یک نفر در مصادر متعدد 20 تا اسم داشته نه این که در کتاب السابر اسم میوردن گفتن لاوبر مراد به فلان که خود چند با تخصص خودش نفهمید که مثلا در اینجا مراد اون آقا است. مثلا احمد بربی احمد البرقی البرقی احمد نوری عبدالله احمد بن محمد احمد و اینا و 20 تا اسم مثلا ممکن بود باشه که یکی باشه. های خوبی در این کتابه اینا روشه در این سمهور محور محور در این سه بر... یعنی کتب روایات و رجال و کتب تفاسیر هر اسمی رو به همون عنوان که هست در کتاب آورده این خیلی خوبه بسیار بسیار کار خوبی در بعضی از جوها محسن بعضی از جلدو بشتر جلد اول در اینجا کمتر این جلدی دسته محجزه بیس 20 کمتر. مقابلش هم بایی مسایی زدن مسایی با فلان متحیل اتحاد ایشون در اونجا بحث می این راه بسیار راه بودی اون مصدر به دقیق حروف حجایی رو ملاحظه کرد مثلا ایشون پس اون یحیل, یحیل رو، را برو رو از قبل از یحیاب بین مثلا یحیاب بعدش علف از را این رو بر یحیاب بین ابراهیم براه اونم مقدم کرد. در از دی از کتب انجیلی می‌رسند یحیی لازلابد بعد از یحیی بن ابراهیم چون بعد از یحیی ابراهیم یشون نه یشون همون حلات خود نگفت که من روشن نگفتم این امکانی مهمه کسانی در بعضی از کتب یحیی لازلابد بعد از یحیی نه بن بعد از یحیی بن ابراهیم چون آبی است یا همزده بیت این نه همزده زه اذرا یشون یحیی لازلابد را اول اورد بعد یحیی آب بن اورد مثلا یحیی القصا مثلا با مثال یا یحیی کوفی مثلا در کتاب رجالی یحیی کوفی رو برای مثلا بعد از یحیی سعید و یحیی بن قریش بعدش مثلا یحیی محمد یعنی کوفی رو اونجا ولد ایشون نه تمام یحیی‌ها که تمام شده بین کلان بعد یحیال کوفی یحیی کوفی کاف رو با ب حساب کرده، ب لذا که ذکر شده اسما در کتاب ایشان. و اون کتب متعارف رجاله فهم میکنه و ایشان دقیقا مراهات حروف کنه این علمیه علمی تره. این کار انصافا خیلی علمی یعنی شما اسمی رو که در یکی از کتب حدیث ما پیدا بکنی چار در کتب رجال هر چی که باشه اینجا در این کتاب اسمش آمده حالا یا حکم نکنم در این اسم ترد مخواه میکنم مجهولی یا محمده یا نتیجه گلستن برای اتحال یا آزام این نکات بسیار مصبتیه در راه هایی ایشان چون من خواهم خب مهنده بکنم چون بعد از این اگر منابشه که کتاب جمع بری بشه راه درست همینه این در آوردن هست بسیار راه دقیق و لطیفی رفتن او فکر مبارده که خودیشون بوده شایده ایشون بوده این راه بسیار راه درستیه و جدا هم کردن مثلا اگر ادنا شبیه باشن مثلا این یحیی بن رو با یحیی بن حسان رو با یحیی بن حسان, رو, حسان رو جدا کردن سه شماره دادن البته یه مشکل دیگه میونه که اینکه مثلا ایشون در اینجا تکرار در یحیی بن اواخر کتابه 13000 خورده اسم ورده ممکن است زیادش مشترک باشه این زیادش غلط باشه مبهم باشه ممکن در اینجا سرد اضافه بشه. این اعتراضش این کار اینطور نکرده، این کار خوب نیست. این کار یه شماره یک زدن. حتی احادیثی که هم وجود خارجی نداره. اسم غلط کلن خود میگه تصریف سعیش اینه. معادل شماره زدن. وقتی نگاه بکنه میگه مثلا علمای شیعه 15000 نفر درجهشون اسم ورته. خیلی واقعیت نداره. یه اوهام تصیفه. این نقص این کتاب رو ترفت میکنه یا تکراره تقرار. خب باید جلوش نقطه بزن یا دو راه داره یه دید در این شمارش ها نقطه بزن یا فرقی میزن همون شماره تکرار میکن دو سه فرقی میزن ممیز میزن با فرقی حالا اون زوریات چون ما یه بحثی هم داریم که باید این هم تلخیره بوشتار بکنیم که ما مجموع افرادی که در چند رو بدونیم و این رجلاله کوی نمی یعنی شاید مثلا بشه انسان بگه از نصفی هم کمتره یعنی مثلا ایشون 13000 اینجا خورده بگیم مجموعه ای که میشه ثابت کرد مثلا ممکنه 8000 هم نباشه خیلی کار مشکلی یعنی نسبت خیلی بالا سال مثلا 1000 تا 2000 تا بود دیگه مثلا شاید میگن خودش مثلا بعد از تحقیق 3000 3000 خورده بدهونه کیفن 13000 هم همزده این کار ایشون نیست. و این سر اینه که اده از کتب رجالی ممتوس سرچی نیست پرد خیلی ارغامش از این پایین تر نکار دیگه هم رو خود علام خلاصه از این کم یه در برداشتن اصمانی که مجبورن یا مهمن اصلا کلن تو رجال نگوندن خب این خوب نیست این, این راه که ما استقرار بکنیم خیلی خوبه اما شماره بزاری ها هم انایت میکنیم که تکرار نشید بعد ایشان یک احولویی دارند در زیجه همین یحیبن حسان کوفی صفحه چلیه ظاهر و کلام شیخ حیث و یحیی یحیبن حسان و یحیبن حسان کوفی کلا من هم مستقلن فی اصحاب صادق علیه السلام حب مقایرت است یحیبن حسان اخیرین کین حسان با اینها مخالف البته شیخ در رجال تا عنوان آورده یهیه الازرع، یهیه ابن حسان، یهیه ابن حسان کوفی. سه تا عنوان در رجال شهامده. در صادر ساده. کما ان او هو یهیه ابن عبدالرحمن الازرق مستقلا این یهیه ابن عبدالرحمن الازرق رو بعدیشون میاره. اینجا نگفته. یک شفا ان ان یهیه الازرع و غیره لیهیه ابن عبدالرحمن و الا پس بنا بر این فما ذکره هو صدور ایشون کلام صدوق رو یا عرضش به جالی بشتاده یا ارزش پیهستی و ما ذکره صدوق من ان یحیل ازرد، او و یحیل احسان ال از لا موجب به درف الیده کلام صدوق قبول میکنیم که یحیل از ایشونه مثلا بگیم نه ایشون نیست به ان کلام تحسان که کلامهی محرف و عبدالرحمن بگیم مثلا تحریف از کردم، تحریف عبدالرحمن بودن به این معنا سحرغه شدن به این معنا سی عبد و الفلام را عبدال این عبدالرضا ساده حمام و همان حسان شده اینطوری بگید مراد از تحریف اینه ازن یحیی بن حسان اسمو لسلاسه ترجان سلاسه درجان احدهم یرا عبدلعذر یحیی بن حسان و کلهم ها و غیر و سالسه و سابه این راکب کلمه بعد درکشون در زید یحیب نرز و رحمانه از وقت هم نوشتن ابو تقدر من کنام که ترجمت یحیب نرزان را از وقتم نفهم بودم چی مخونم خودمون سر در نیاریم که شو مخونم چی کارو کن هلاری حاله ایشون می فرماییم که یهیبنه حسان سه نفر هم هر سه هم مجهور الحال هم ارز شد که از مساله که ارز احتمال تحریف و تصریف در کلام که خب خیلی بعیده این خیلی احتمال زیده اون که احتمال خواهد زیده اما این که یهیبنه حسان و یحیی یهیبنه حسان کوفی شخصی باشه الان از شواهد روایی که ما داریم نداریم چیزی و چون یحیب نهسان در کتاب برقی آمده و شیف احتمالا در بعضی از مسادر شیعه موجود بوده مثلا اصلا برقیت بکنه خب آشناتر یحیب نهسان کوفی و پرش شیف توسی نهارتنه و چون شیخ توسی کلی از مسادرش برمیگرده به ابن آهوده احتمال داره که اصلا شخصونی باشه یکی نباشه و این که ایشون آوردن بودن عبد یهیل از و یهیل نحسان و اون یکی دیگه رو مستقلن به یک شفا عمل این توضیحاتش رو چون چند بار گفتیم که از راه که آیه خوبی دارن این از که اگر یک کلامی در رجال شیخ تکرار میشه ظاهرش این که متعددن این ظاهر ثابت نیست این ظاهری که ایشون کار چون این کار در کلام شیخ زیاد تکرار شده. اگر یه مورد بود ما میتونیم قبول بکنیم زیاد تو اصحاب ساده اینا زیاد ما یه توضیح عرض کردیم ببینیم تکرار در کتاب نجاشی هم ما داریم فهرس نجاشی زیاد نیست مثلا فرص کنیم بین که یک جدار در دلتناسی یک جدار ابو خال دلتناسی ممکن تو یکی باشن یا یزید دلتناسی داره نجاشی تکرار داره لیکن خیلی کمه و سر هم یه وقتی آدمی که توزید شیخ در کتاب فهرسش تکرار داره بیش از نجاشیه اما باز هم کمه فکر میکنم کل تکرار فهرسشه نش مورد یه عبوری که نگاه کردن مثلا کونزر مورد دوازده مورد زیاد نیست که اون هم نکات خاص خودش داره و بعضیشون ما نمیتونیم برها هر داره الهام داد و قلمش شد. راست کرده یه صحبتی هست با شیخ اصولاً کتاب‌هایی که نوشته در بغداد نوشته. خوب دقت کنید بیشترش مصرده بوده. در وقتی که شیخو قاضی شد و باعث اینا مبعث کنه مجبور به حجره بده شد. از بغداد بیرون آمد. در نجف هم کاملا واضحه هم. چون نجف شهر نام دیرا، قرار رو بود. مثل مسیح جمتران سال و خالی بود ده جمتران نزدیکش هست اون مثلا ده کوفه مثلا کوفه ده کلومسی شد هیچی دور برای قبرانی رو, رو نبود الا اینکه ایام زیارتی مثلا دست روشا خیمه ای روزن کار میکردن به الا شهر نبود به با آمدن شیخ که ایشان یه آشان جاوتا یه آشان شهری شد شهر و شد نجف اشرف حوزمیت و شهریتش با هم یک ز هم شهر دا هم حوزه شد اینطور نبود نیست قومم اول اماطور قوم هم تا معرا این تشون گفتم اا شهر نبود خیلی خیلی بود کومه میشین گفتن کومه کومه بود خیلی خیلی بود. اما شهریتش با حوزهیتش نبود راسته اما شهریتش تقریبا با آمدن اشارره یمنی هایی بودن که در کوفه بودن و تقریبا موالی اهه بزننشا چی مسلح محعمل با اون بود اما با حذریت نبود در هر حال یک احتمال هست منشأش این باشه که شیخ موفق به تنظیم نهایی کتاب نشده. احتمالش هست این بود. در هر حال تو فهرست شیخ هست. با اینکه معظم مواردی رو که من دیدم قابل توجیه تساؤل در کلماتش قابل توجیه که نمیخوام الان وارد این بحثش. اما در رجال ایشان زیاده. خیلی زیاده. زیاد. و اونی که الان به ذهن ما میرسه چون رجال از روایات گرفته شده احتمالا در همون کتاب اصلی که شیخ از او گرفته همینطور بوده یه اجتماعاتم خود شیخ استخراج کرده از یعنی. کار شیخ در رجال یا از مسادر گرفته یا خودش استخراج کرده خودش مثلا رو خویی خویی این در کتاب کافی که فلان صفحه گونه یعنی اینکه ایشون کتاب کافی در این چه اسمش نیست تو هم یرا یه ده از موارد مخصوصاً توی مملکه‌ی عربه هم آخر توی این کتاب بر حسب عین قرار بزره از صاب رسول الله علیه و آل و امام موسی تا آخر بعد مملکه‌ی عربه اون مملکه‌ی عربه استخراجات ایشون زیاد بیشتر از جاهای دیگه است استخراجات شخصی خودش احتمالا تو اصحاب امام ساده مثلا از برگی گرفته از ابن حقده گرفته به احتمال بسیار قوی تکرار منشه اش این بوده مثلا یحیب نحسان تو کتاب برگی آمده برداشته نمشته یحیب نحسان کوپی تو کتاب نعوده آمده برداشته نوشته. این معناش این نیست که باشه، اصلا این کدیم کتاب در اصم مثل برگی مثل ابن عوده. این از روایات گرفته شده اصلا توی روایات یا نه بوده توی روایات درسان کوفی بوده در نشی جدا نوشته چون احساس دو نفر باشن درک کنید پس این به این معنا نیست که مرحوم شیخ طوسی اگر او کما این که اینی که در کتاب زیاد آمده که اگر شیخ طوسی کسی رو آورد ظاهر و امامیت رو تکرار نکنه رد ساله هست. اون مامقالی را رساله اون حساب به احتمال بسیار غریب چون ایشون استفاد که کرده از ستابه ابن اغده شامل سنی زیدی هر مذاهب مختلف میشه چون اون ابن اغده از کردیم هدفش این بود هر کسی که کل رو مرد و انسانه که چه چهار هزار نفر رو پیدا کرد و از کردیم اون رو که ابن اغده در تنگیر رجال گرفته در اصطلاح رائجه علم امروز ما اون, اون تنظیم قبول نیست اصلا اون راه باطله چون خیلی از اصانی ذریفن خیلی از اصانی مشهورن اسما بایی که شده وقتی مبنا بر تنقیه ما رو شد یم گل و ما و جده کنه؟ این اگه یم گل و ما و جده باشه خیلی کار مشکل نیش لذایی که ایشون می یا مرحوم آقانی که ظاهرون امامیت رو نه اون دلت و امامیت نه. این که ای فهمی فروان ظاهر کلام شیفیرا سه نفر اینم ظاهر نمی‌سنه چون شیخ اداره استخراج نکرده یا رو قاله مثلا یحیی بن از برقی گیرسه برقی اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده ایشون که اصحاب طب امام موسی صادق همو گرفته نسبت به ابن او ده احتمال غریبیته داره ایان خوده قابل در نظر دارم اولا واضحه شو اخباریه کسی به حدیث واضحه یه مشکلی چند بار اثرم چون می‌خواستم اجازه وارد بشیم راجع به ابن ما با میراثای خیلی خیارشون نیستیم متاسف کنیم حساب اون حجم سنگید میراثی که ازشون نرف شده راست کردم برای وادادین ووسی که فرستادم نامه نامی مثلا چیزی که پیدا کردن جواب من داده 28 سال پیش 25 6 2020 که از آثار ابن نوبه که از عزیز علماشون می‌گن ما ندریم از آثار ابن نوبه اگه او که الان با ابن زیاد این این کتاب قیبت نومانیه خیلی روايات ابن اوذر خب که در که از خیلی واضیه اونشی نازین. واضیه که اخباریه. یعنی اونجا زیاد روايات ابن کتاب غیبت نومانی خیلی زیاد. خیلی مثلا خیلی بلا حالا قاطعا این استظهار که امامیت ایشان هست یا اینا متعدده اینا هیچ کدوم مبنای علمی ندارن البته خود ما هم الان نمیدونی واقعا یه یبن یعنی حسانی که به احتمال از ما هم گرفته آه. یعنی یبن حسان کوفی هم اینا قطعا روایت بودن نمیشه الان اگر ما اون رواستونیم ممکنه حکمی از حکم ابن عبدو بکنیم الان نمیدونیم چیزی بگیم الان راجع به مطلب محضب نمیدونی. این راجع به یه چند تا عنوانی که دیروز خوندیم و نظر مرحوم ایشان که ما یهیل از رو حمل بکنیم در یهیل نحسان به قرینه کلام شیخ صدو و ما ارز کردیم که انصافه کلام شیخ صدوق نه ارزش رجالی داره نه ارزش فهرسی ارزش یک سند داره اسلام داره اگر کلام شیخ قصد درست هم باشه نهایتش یک سنده با این سنده ما نمیتونیم کتب رجالی متعددی رو که داریم یک نواق که و روایات فراوانی که اجلای از خواب نرکرمه علاوه از این و صفا یحیب از یحیب ازرخ رو هم بکنیم بعد یحیب نحسان ازرخ که ایشو همگر مجتویل است و پیشون نبیشن این راجع به این رسمت در یک بخشی یشون در زیر یاهیاب نه ابد و دارن. پس که اینجا معلوم شد که به نظر اونها که یشون یاهیاب ازر یاهیاب نهرسانه. دلیلشونم که اباده صدوبه. چون صدوبو زاو مکانی که این یاهیاب ازر. کلان کلان، انا ابان، انا یاهیاب نهرسانه ازر. پس یاهیاب ازر در واقعیت. مرال از یحیل از وقت در همین یحیل نه هستانه خلاصه نظر مبارکی شد خبی من دیروز کمی می وقت شما رو گرفتیم شرم نقاط تمنیلی که گفتیم برای همین بود که معلوم بشیم مطلب قابل تصدیق نیست عبارت صدوب اون صلاحیت نداره که روایت رو توضیح بده یه سنده عرضش کتاب رجالی هم نداره مقایسه با کتولوجی و فهرست نمیشه نم در یک سنب یحیب نحسان عزق آموده این کافی نیست داره شرحه با قولیشون مورد که در کتاب اول یحیب بعد در صفحه شهست متعرض یحیب نعبدالرحمن العزق شدن البته یحیب نحسان نداره کنی یحیب نحسان نیگه بحثی و توسیمه شده و لذا این روایانی که توش یحیب نحسانه به نظرشون ایشون جالب مرغم در حسابشون دارن یحیی بن عبدالرحمن الازرغ تصریح کردن به اسحار دوران کوفی و سفیه علاوه علی عبد الله علی حسن همسان این بحث ها کوفی و از کوفیون می خوره این تحلیل عبارات نجاشی می خوام بگم چون کمتر شده ممکن جزء تراجیع باشه ما یه تراجید داریم یه رجال داریم یک به اصاف فهرست داریم. این مباحث رو با هم خردش سیره تون بحث رجالیه ربو انبی عبد الله بن حسن این بحث رجالیه این ربو انبی عبد الله بن حسن احتمالاً خودش بغیگه چون هم نشه احتمالاً میشه از روایات دیگه از جهت تمییز مشترکات خوبونه بله بله تمییز مشترکات چرا میتونه مؤثر باشه و از لبو کتابون این لبو کتابون این به اصطلاق بحث فهرستی و لذام اگر کباره شد از من درشین دروشین مثلا علامه وقتی که از نجاشی نهار بود نه همین ملاش نهار کده یحیب نردو رحمان کوفی اون سقره و نبی عبدالله عبدالحسن دیگه لبو کتاب چون لبو کتاب فهرسته ایشون به هم دیزه رجالی شکل داشته این لبو کتابی که ایشون به نصفت دادن عنوان کتاب ندادن اما یه مقید زیادی از آزش تو هر جران تو حکی ما آمده تو چند کتابال حکی آمده یکی که توضیح که دم بعض داشت هم چازه اصابه اولا نکه یه یه از نه یه یه نه حالا ما این احتمال رو دادیم که گاه و که نجاشم گیره اون کتابا مراد در حقیقت ل مکتوبان مورد از کتاب کتاب مصطلح ما نباشه حسس شد رو مقب و کرده نکرد. این است که ایشون روایاتش به نحوه سمایی به ما نرسیده به نحوه کتری رسیده. خیلی دی این خیلی پده مان میان. این یکی از مکات من ص این کار به نکردم این مزایای ما برسم است یعنی ما یکی از نکات خیلی مهم مادر فتره که این البته هدف اساسی نبوده این به ما صرف تبعید اینا خوب دقت بکن چون در دنیای روز در سطح دانشگاه ها اون این خیلی حساسن که این کی نوشتاری بوده که کتاب بشه گفتاری بوده که این مثلا فرض کن نوشتاری شده مثلا وقتی یه لحظه کتابو میگه که اگر احادیثی ما از یه العرق داریم در اصل این احادیث شفاهی نبوده نوشتن بوده این رو به دست کنسان شاگرداش شده. نوشته منتراش شده. پس از امام صادق و امام کازم علیکم السلام سلام به نحوه شنیداری صادق شده، گفتاری صادق شده. خودشون سرد کرده. خوب درده یعنی؟ این سرد چود رو داده؟ خب این خیلی که شیش بیشتره که شکالی گفته باشه. ما الان پسیل در سنده هایی که در کتاب بخاری داریم نمیتونی تشریف دودیم این از خدا زمان شبایی بوده بعد کی شده خیلی مهمانی خیلی, خیلی صحابه یه اطلاع هست لیکن این اصالت حدیث شیعه نشونده من اصلا ما یه نکادی در حدیث داریم که خیلی از اونها اصالتش روی تره یکیش همین یکی از نکاد همین این لبو کتاب این بیان این که این جنابه های از و به صورت نوشتاری نبوده به کتاب به نظر ما نوشته ها و از این تغییر هم معلوم که در مختلف بوده هشت بوده الان به نظر زدش در هر جمع نه بالا سر از احتمال خب میخوادیشت داره من اصحاب نه. خیلی لطیفه چون این نوشتا و زیاد معلوم میشه کسا میکردشون تحمل کردن شمیده این عوض کتاب ممکنه کتاب رو سمه عمومه اقرعه و او اقرعه ارا این شخص انواع تحمل رو من خواب به انواع تحملشون دارم اما به هر حال به این صورت دوده یعرویه عذت و منعصاب چون چیزی که ما الان در یهیل از داریم عدد زیادی از روالی که کاملا واضح کتاب و سفوانه کاملا واضح کلین بیش رسخان واقعا حاوی جا تعبدانه. واقعا جزء عجله عثاره. ما امثال صفوان ابن ابي و هم نجاشی و صباح و صباح از هم شعرشون عزل دروسیه، ما دنبال مؤلفی برای همین میگردیم. بلا اجل زیاده و رضا من احتمال میدم و رو در فهارس مؤلفان نروید صفوان نروید خطاب احتمال چون زیاد آمده. و جاهاییست که ما یعنی داریم دادیم کتاب رو سحبا نکرد توضیح فیلم طول می گشه یعنی هزت من اصحابنا اخبرنا محمد نو از مشایخ بغدادی ایشانی که خیلی نمی و منفرد است هست مرموم شیف سوسی بیشون قال حدستان آجه افراد محمد نو بروه قال حدستان آبیدالله نو احمد که ظاهرا چیزی باشه عبو طالب انباری فکر فکرم حال حضرت سنافتاتوری میره طریق واقعیها ها و قطعی ها از طریق ما خارجوشون این علیه نهرسن رباد این به سند خوبه مشکل نداره محمد نوستان درسته میشونست اگر عبو و انباری هم باشه تضیح کنمانی داره بعضای توصیه باشه ما یک نکته چیلی مهم نیرو در بحث آشنایی با نجاشی خدمت و اونکران عرض کردیم اونا رو تفکیل رو بکنید خیلی مهمه خب بلاده مهمه مثلا ببینید ما از شاید بیش از نصف کتاب فهرست نجاشی برمیگرده در مشاعف و خیلی نقطه عجیبی. کتاب ها در کوفه ترمیل شدن در کوفه نوشته شدن اون هم برداده برداده اون زمان زمان رو هم نگرده برداد تا نجاش 183 کلومتی 60 303 خب طبیعتاً بازیشون از بغداد به کوفه میبردیه آدازشون. کتاب کوفه ریشون از بغداد میاد قوم از قوم میره کوفه. خیلی هچی. بیش از نصر کتاب مرومه نجاشی و مرومه شیخ توسی از طریق قومه. آنگه یه مردادشون از طریق خود بغداد به کوفه است. این, این جز اوناست. این جز اوناییست که از بغداد رفته به کوفه. اصلا به قوم نهاره. یعنی کتاب یه یبنه عبدالرحمنه از رفت اصولا در دست مشاهد خون نیمانده و ما انز کردیم اگه آیم یه راه دیگه هم هست و اون راه این است که انسان بخواد این مثلا اجازاتی رو که مرموم نجاشی داره یا شیخ داره حالا زیر اسمی نیسته اون جغرافیاش هم نیسته کلونیزم یه جغرافی حالا این نه رجاله. رجال کلاسیکی من رجال بطنجوه رجال بطنجان بیه رجال. رجالی که با جغرافی اعتباطش شده خود نجاشی اهل بغداده محمد ابن عثمان اهل بغداده جعب پرنه محمد اهل بغداده حبر ابن اوله باشه اعقی دلال نحوان به ذهن من حبود خالد انباریست مال انبار بود بعد ساکن بغداده بعد از بغداد ایشون میره کوفه تاتوری کوفیه اون ابن هم کوفیه اون آخری هم کوفیه این اگر در همینو سیر جوری خودتون یه تنظیم اینجوری کنیم خیلی فوائد داره اون سیر تاریخیش و پبودش و فوائدش حالا شاید اینوز بعد توایدش دیگه فوائدش شیری فراوانشون گفتم نشد تا آره این مفرح, مفرح خیلی نیتونه تأثیر گذار باشه کاریش که نفیده روی اجازات و فوائدش ما اینکه خدا مثلا ما اگر بر ما صابر شد که کتابی احیاب نرد ورمانه از وقت قوم نیامده، شاید صدوق با این اسم آشان نبوده به ذهن شده که این احیاب نهستانه یکی از عوامل اشتباه صدوق این باشه روشن شد؟ میگم شون تالا این دویست ساله هزار ست شده که تالا نکاس و نشده ما یه نقداری تهرز میکنیم. راجطه یه یه رحمان از رفت آن خیلی از ایشون اسم کتاب هم نورده که همان امرا کتاب حج احتمالاً باشه اسمش یه مقدارش فرمن کتاب حجه یه نقطه عجیب اینه که به هر حال معنی میشه مقدار این گیر داره چون کلیمی چون محمد نجاشه غالبا یه کنیهی برای شخص می نمیسه. اینجا کنیهش هم ننوشته <تصفح> یعنی هم نردو مختن نجاشی چون کتابی در انصاب عرم داره خیلی مقیده به انصاب شیخ اینقدر مقید نیست یکی از سواره به حسن ندرشی باشه همین نصرش هم ندرشی باشه این هم خیلی عجیبه خیلی تحجیب باید یحیب نردرحان رزن نردر فلان گفته نگفته مثلا اجلی از مثلا همداری بفهم از یک جایی هست نمیتون چیه سراشی سر میکرده خیلی شناخته نشه سنجشات تریه داشته، چون این شاید آمل بشه برای اینکه یک سؤال ما بتن در مدرسه ما و اون که وقتی چیزی در این سه، و یکی از این پیازهای از وقت روابطش، از نظر متن عربی خیلی قویه، شلوغه و خراب و خوب نیست. مرد، یعنی روابطش نقطه ادبیش خیلی قویه، متن خیلی ضعیفه، متن ادبیش من چند تا رواستش با دقیقت عددی مثل محکن رواست زراره است یعنی چون زراره خودشه که باهم فقیره دیگه اصلا فقیر بود که بلچیه شد و ملاست کاملا شاید ما به سلابت و مطانت مطون رواست زراره کلن در شیعه نداشته باشیم فوق الازه خبیه و با قول قدیمی ها جوامال کلم میگفتن ما میگید سلابت و مطانت اون اول جوامال کلم لاتن هم خود این هم شمکی ا این لا تنقضی یقینه شک که من ارز کن ما در استساق مرحوم شیخ و برداشه و قبلشه در 15 روز و 15 روز و 12 روز و کلمه لا تنقضی یقینه به شک در زروره است کسی که هر نکنیم این خیلی مهمه هم میشه احتمالا خود داخل تصرف شخصی خود بدا. کلامه ما رو که همه نهم میکنن ما این کلمه لا تنقضی یا چی شبیه این رو نداریم من کنم علایقین یقین پر از آبه و شک بلیمز در کتاب صدود داره فعندل یقینه لا یوت فعب شک در کتاب طرف العبود داره فعندل ال یقینه لا یون قضا باشه. به اسم اصلاه این نصفه در این رو باید حدیث اول همه. ما در هیچ روایتی لاتن موزه یقین و شک ندارم. که ما هم تعبیر بودید. البته من تعبیر تنگی ندارم. بذارید اینو رو شرط تعبیر عدلی بسیار تنگی می. ربیات یه یحیی بن من نگاه کردم خیلی مفینه. متون علما لازمه که روز ظریفات رو ما وقتی ما ریبت رو این بصراثی وقت خیلی متن سنگینی داره. متنش مشوّه نیست. یعنی شاید یه چیزی مثلا روفتن از متن زوارطایی یه چیزی در اون و غلاده هست و مثل صفوان این هم از اون نهر بکنه خیلی عجیبه انصافا حتی یک ما من چند را بین احساس هم ما احساسی بکنیم که ایشون شخصیتش به حسب نوایاته به حسب تقبال شخصی خودمون بیش از اون مقدار سیار که تو رجال و فهرز آمده شخصیت واقعیش بیشتره حالا کنیش ایشون نیورده نصبش ایشون نیورده و در احادیث اون زمان نسب خیلی مهم بود یه مقدار ارهام داره اتفاقا این مقدار ارهام داره از جلال قبول که خیلی مؤثره ما الان در عرف همین گفت ان المرء لا تسأل عن سر قرينه فان القرينه بالمغارنيه يخدع شماختی بفهمه که این با کیراتیج با کیراتیج اینو خط توجیه نمی‌کنه اخیرا تشدید راوی که آبوی و مردی بود هنشکی بوده تعاویش که بی سنگینه در چند تا روایت ما بسید و انزراره و بورید و محمد المسلم و, و یه یه از در اداد اونها نام برده شده شخصیت این آراد بیش از اون مقداریست که ما در این کتوریجه آرادی و دیگران داشته. اونی که خود ما با مراجعه مستقیم و خودمون شخصیتش رو حس میکنیم بیش از اون مقداریست که نوشته شده. وقال از شیف رحمه الله یحیبن عبدالبطمان الازرق لفو کتابون بیشون مثل راست نجسیست دیگه توسیقینا نداره اتبر نابیه جماعتون تماعت مراد مشاعر فضالیشن انا عبیمون فضال عبی شیبانی از سلم نجسیو خودش شاگه لبون رو بفضله نجسیو خودش این تقرید داشته اعتماد نکنه انا همه انا همه از حمید یعنی ابن سنوان انگو از اجاره به کاری اینه که این تاریخ همه از بغداد به خودی است خصوصا که من نوشتم اون اگه بخوید ترتیب ایشان نگاه بکنید شیخ خودش بغدادی است این جماعت هم در اینجا کلا بغدادی هستند اصل شیخ مفید هم سيدنا هاشم اهل مفضل ایشون بغداد بوده ایشون از نواظر علمای شیعه است که اولا بین سنی خیلی اسم داره و مثل همون سنی‌ها رحله به طلب حدیث ما تو علما اون رحله خیلی به کار اون و به طلب حدیثو خیلی به کار نمیذارید خیلی فوق کاره یک محدث فوق العاده میه ابو مفضل هم که درس میون تذکیف شدن هر حال ایشون در بغداد ساکن برقرار میشه و نجاشی پیشش رفته ازش هم شیری لكن کم ازش شعر میکنه خیلی اونم با عنوان قاله ابو مفضل نمیگه حدث سنا ولی حدث سنا بود اعتقاد بشن رشته کم بشن رشته. پس ایشون هم ساکن بغدار بوده ازا همه ایشون کوفیه که اواخر آمش خامی میبینه که اون خوابشون ساکن کربلا میشه و از بزرگان واقفیه اصیف مدر کربلا خودشون، در اداد حدیث کوفه اصابش می کن مفضل از ایشون حدیث نرمی میکنه البته تقریبا مابین فوت همه و ابو مفضل بالاتر از هفتا سال فاصله است. احتمالا جمانی های مفضل بود چون همه سرده های به نظر هم عبور مفضل سره چیزی شبیه بیش از سال فاصله بین خود این دو دره بین عبور مفضل به همه پس شیخ بغدادی جماعت بغدادی عبور مفضل ساکن بغداد و از همه جا حدیث همه کرده به کوفه رفتی همه جا به ایشون آمل انتقال از صوف است. کمید ابن زیاد کوفی ابن سماعه هم کوفی اون صاحب کتاب هم کوفی روشن شد که این حدیث هم در فهرس شیخ به قوم نیامده از بغداد به کوفه رفتی بعد شیخ میفرموز به رواه و ایزن همه به غریبه رواه و ایزن مرادش همون عبول مفضله باز عبال از اول و فضل رفته به همه از علی محمد قاصمه اسماعیل و بارشی یه دان شده ایشون هم اهل کوفه باز از یهیه از کوفی پس معلوم شد تا اینجا ما تا سند مختلف داریم در اجازات هر سه سند یک اشتراف دارند هر سه از بغداد به کوفه رفتن تا اینجا این نقطه برای ما روشن شد چا میخواستم چون روزه که ان فردان الله فردا نهایی بکنیم معلوم میشه یحیی بن عبدالرحمن بن یحیی بن عبدالرحمن ازاد با تمام جلالت شأنش یک مشکل داشته یا در زاویه بوده یا خودش ظاهر نمی‌کرده یا مشکل تقیه داشته و به هر حال آثار ایشان به قوم ظاهرم ظاهرا ها خیلی مطلع از آثار ایشان نبودند. فردا ان شاء الله اینا دو است که به این راهی که ما میریم انجام می‌ده. صلی الله این